اینجا کلیساست ؟ بله، اینجا کلیساست. امروز یک شنبه است. مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا میآیند. فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می‌کنند. نه، در تهران علاوه بر مسلمان ها، مسیحی ها،, یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند. راستی زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟ در یزد، چرمان، اسفهان و تهران مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟ مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند یهودی ها هم در تهران هستند، درست است؟ بله در تهران و شیراز البته تعداد آنها کم است مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند مسیحی ها زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ بله همه ما ایرانی و دوست هم هستیم آنها در مجلس هم نماینده دارند؟ بله، همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند